اگر چنان که اسم مذهب نبی شود باید مذهب اهل سنت و جماعت رسمی باشه چی باید به فکر اهل سنت باشه خلاف مذهب به اینا تحمیل نشه قطبای باشید من با خدای خودم تو یاد کردم که جز اون که صلاح اهل سنت و جماعت در آن هست در اینجا نگویم من یه جا دارم این یک دیگه اردش این نداره که حالا من این گروه رو تحمل کنم که من چند روزی دیگه بیشتر زنده باشم من از چند بگیرم فشار خون بگیرم من از, از کند فشار و خون بگیرم ما رو از مرد به تهدید ندرسانم که ما ازتخار میکنم به خدای مسعار قسل از کار دودرم از درگاه او که روج خون من برای بالا کردن اصطدای و ازلومیت اهل سنت ایران و ازلومیت مسئل شد و ازید بند ولا تقول لمن يختلف في سبيل الله اموات بل الاحياء ولا الا الخروج كل حياتك خدوند برائے مقطولین في سبيل الله بذلك هذا حياتي انكم راحل جميعا فذا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين بسم الله من, من الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا ولقد مولانا العظيم رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك بحث ما در مورد نصوص امامات ادامه داشت چند آیهی در مورد قبلاً دولدی ها شده بود دعایه و احادیثی که مورد احتناب قرار می در در مورد در این جلسه در نظر داری که مطلب شد یکی از آیاتی امامت یا با عبارتی دیگه خصوصیت امامت که عثمت هست <تصفح> که معروفش کردن به نام آیا تدخیف هن این جمله هست که در اتباع کتبه کلمت شد یک قسمتی از آیا زیوسه سوده احزاب اگر نظر مفهوم روشن آیت ها به بعد استقلال عنه تشیعه در مورد عثمت برای مفهومی <تصفح> ويا سريعه سوره احزاب اذن هذه الايه تقريباً تقريبا تفسس ايه ديست يا النبي قل لازواجك كله تاريخ وارسنوا اشكارك كده ده الله عليه السلام ما انوريت بعد شويه ان بزوجهم امفرانهم ان احكام خدامتي و این احکام تحت سار کلاً در رابطه با ازواد هست حالا کار ندارن که بعضی از همین احکام برای بقیه مؤمن هست اما اینجا دستور این احکام برای ازواد هست دستور راد شده که ازواد این احکام را ابناغ بکنید در اتدای رکو که همه آیه 28 باشه همه کلی ازواد که هست بس دوباره هم یا مثال نبی لسونک احدی در آیه سیو دو باد خطاب به اذواذ تهرانبرانه است. و در همی آیه سیو سه اتباعش لکر نفی دلیوش کن ختبارت اذواذ و بلا ثبر و جن تبر روز خطاب به اذواذ تهرانبرانه. لا عقین الصلاة لا عقین الزکاة الله و رسوله خطاب به اذواذ تهرانبرانه. <تصفيق> مسلمه که دنبالا این جمله انما یريد الله ليضهب عنكم وردت اهل البيتی ویطاهركم تثیرمیزم خطاب به همین همسرانی که رمبراز که دنبالا ایما دنبالا دبارا میجی وذکرنا ما یکلا تی بیوتی کلن من آیات الله و الحکمه ان الله كان لطیقا خدیرا سیاق سباق آیات و جمله کاملا اشکار و روشنه که امتکار آیهن خطاب بازوال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و تشری برای اطاعت از دستورات الهی كه که انما يريد الله بیده با نحن روز که تثمین دارد هر وردوار عالم فدود از شما نجاست را یعنی را ای اهل بیت و شما را حاکیه کاملی حالا اهل بیت و این تدخیر تكهير چنو تدخیری هست؟ از نظر اعلی تنمت اهل باید امنطور که معنای لغوی و معنای عطیقیه کلمه مراد خانومه، خانواده هست و حمسره اون من منزل هست و تدخیر منظور حاکم جه داشتن از گناه و محفوظ داشتن از گناه غیر هست و عتمت، چون از نظر اعلی تنمت عتمت مخبص انبیاز و برای حفاظت وعید با داده میشه اسمت لازمه روی هست غیر کسانی که صاحب رحی باشند و حیغمبر باشند اسمت لزومی نلارد به نبایی اینجا حفاظت غیر اسمت مراده و محفوظین هم گناه نمی کنن. با این فرد که اونا درجهشون از درجه اسمت پایین تره حالا اینجا اهل بیت منصور اه همسران رسول الله صلی اللہ علیه زنید خیلی روشن و اشکار مانند به افتاق که از اول تا آخر بحث مردوزی همسران رسول الله علیه و از نظر این معنای لغادي هم اهل بیت در زبان فارسی ترجمه اصلش کدبانو و در زبان بلوچی لوگ بانو و در زبان اردو گروانی این ترجمه اصلشونه هیچ وقت کدبانو به دختر به داماد به نوه به چفرانو گفته نمیشونه اگر از کسی سآل در زبان تاستی که تنانی کدبانو شما کیه؟ هیچ وقت به فرعنو خودش معرفی نکنه، که منه یا نوی خودش معرفی کنه این کدبانو منه یا به بروری تیگه تا سنکه که شما کنه او هیچ وقتی به معرفی نمی که این کمره چون لوبانو یا کدبانو یا یا احلالبه به زن گفته می شده، به معنای حقیقی را درک کردن و به معنای مجازی رفتن خیلی دلیل قلی می ما بیاییمو مثل در زبان فارسی آب مشخصه این چیزی که آدم می او و تشتگی را می کنه اینه میگن آب و اگر خبر باشد به چیزی دیگه کسی گزاری بکنن آب خود دلیل می خواهد هیچ وقتی کسی که بشتگی آب دیار نمیلی شیر نمیاره چون اون می که آب چیز لغت کلمات معانی دارند و معنای لغوی معنای حقیقی این قانون اصول قانون اصوله, طانون اصوله فکر و تمام اصول لغات هست که معنای مجازی زمانی مراد باشد دلیلی و قرینه‌ای باشه که اینجا معنای متعذر یا مشکله و دلیل و قرینه موجود که معنای مجازی مراد گرفته شود پس اینجا ماده 8 مشخص شد که از وارد پیامبران هستند و تخییرم مشخص منظور حفاظت و دور نگهدارشتن از گناه و مادیات. این مقام برای ازواج متحرد تشریدن و ترقیبا اینجا مطرح شده اما از این جمله انت علی تشریع اصطلال میکنن برای اسمت اولاد رسول الله تعالی و اینجا چون در مقابل سیاه و سباق قرآن آجزن که متعصبا از این مقام سرگار نمیارن اونا خیلی داغت اذا مؤمن بعد سبين سورة مدرم يكون من يعوافئين آيات تخذنا فقط بربارئية عن سرقاتنا بالسرق و مرادة سرقات رسول الله صلى الله عليه وسلم و حضرة عزيز الله تعالى عنه و قاتل الله تعالى عنها و الله تعالى عنه مراملين سن هذا الآياني انجا حديث رحمة مدرم يكون عند الكنال بازی میکنن ناودک شده ای بازی دیگر سرداربوم میشن میگن تا همچون شماشان اول این چهار هزار قفس تو یه جنب شدن رو آغاز کنیم شماگوش اما تو اللهم آن و اتری فر ادیبه آنهم مریشد و صاهرهم تابیره بعد آیندش که اینما یو ذی اللہ میو ذیبه آنهم مریشد آن البیث و صاهرهم اما این همونای اشاره که همیشه روی را می بقیه یه مزاری که خودشون داوردان تر و با انتاب تر و معرفت تر و معرفی می کنند اون یه مزاری احساب رو می کنند و یه مزاری مسائل مطرح می میگن اینجا چه کار هست بعضی ها می گن منظور از این جمعه ازوار رسول الله و بعضی ها قامتر مراد می گیرند که کل خانواده رسول الله که در اون خانواده هم شری که و هم اولاد و دامت و نوحال شرکت ناشرکت این نیاز مقدار انسانی انصاف بحث دارن بعد میگن کہ خوبی بنی چون یعنی برای با انتقا چون مطرح میکنن بعد میگن اما کی دیگر دارین و براہل و فرایم دیگر دارین که این منقطع به قنصای طیبه یا معروف پنج طرف که بس روایات ناظر میکنن که بله رسول الله صلی الله علیه و آله این نفر این جمله را فرمو. اللهم هؤلاء اهل بيتي اهل بيتي وعطرتي فاظهر عنهم الرجل وطاهرهم كثيرا انجا جاء نقول ان انما كلمة حسرة كلمة التدهير منحسرة براغاني افراد وقتك حسر منحسرة فقط براغاني افراد لا يكون ادواج یا اتحاب یا بغي افراد جملة في جملة داخل بشأن این کلمه انحصاری در اطلاع جمله گفته شده یک دلیلی اونو مترانی کنان دلیلی تو همینه ازواج مراد نیش بخاطرین که اینجا زمائر مذکره در کلمات قبلی و بعدی همیش دمیل آول شیرها معنیس بود مثل قرناتی گویوت کنن اتینات صلاطه آتینات زکاطه اتینا الله و رسوله این کلمات جنع معنیسه اما در این جمله که نیدیتی نیوزه با انخم و رجزه انخم و ح جان سیای ذنیر جان مذاکریه و ایجط را کمم تی را اام ذیر جن مزکریه پس این معلوم شد که غیر از اونا آاصلن که جنیتی از زنانبور و قبلا به صورت جن مع نرس تعدار می شدد این سرو میکنه اینجادی ای اافاد بگردن و این افراد همون چهار نفرم به غیر از رسول الله که مجموعوان میشن سنجن پات که معرووس این روش استطال اع تشی برای اثبات اسن اما این طال کم نق داره چند ععد داره اگر اینکه اسمتی که اونها مدعی هستند مناصح به پنج نفر نگارند اگر ما می‌سانید که آیه اسمت فقط همینه و اسمت فقط همین پنج نفر بود باشه ما یه مقدارش رو قبول نمی‌کردیم ولی اونها مدعی شدن مسئول آن چون اینجوری نفر مسئول ثابت شد بغیش از خدا اونقدرها نه نفر دیگه هم مسئولیتش ثابت نشد و دلیل دعوا برای چهارده نفر دلیل برای 5 نفر و کی تذکر داره دعوا با دل خیر تذکر داره و هر با دعوا مطابق داشته باشه دعو می کنه ناکرین ندارن. نذارن دلیل میارن ثابت نشنن برای تحلیل کن این کلمه دلیل بحث جا دیگه داره اینجا این اصطلاح بزرگ کیونا استفاده میکنن که اهل بیت منظور اولاد رسول الله صلی الله علیه و آله هم چرا ما گفتیم که اون کلمه از نظر لغوی منحرف به معنی بنات امثله در معنای اولاد در معنای فرزندان و قوم خشان معنای مجازیه اما معنای مجازی دلیلی میخواد که معنای مجازی مورد گرفته در در معنای حدیثی قدین و موجودی موجودات همت مربوط به ازواجه کاملا روشن اما این سوالشون که چون قبلا کلمات مؤنث بودند و اینجا زمانی امر مذکر شده خیلی روشن مساله روشن چطور کلمه ال بیت در زبان عربی مذکر خود زنان هم زن هم نیست اما کلمه احل الویس مذکره و در جمله‌های عربی زمینه که به کلمه را در نظر میگیرن نهی چون کلمه با نظر نه می که کلمه به چی کسی اقلاب میشه این در نظر نمیگیرن که کلمه به چی کسی اقلاب میشه میگیره کلمه مذکره زمین مذکر میارن کلمه موهندس زمین موهندس میارن اینجا یو فاهرت هم یا یو زبان هم زمین مذکر آوردش ده کلمه علل بیت مذکره و زمینش در خود برآن موجوده که کلمه علل بیت مذکره و اطلاقش در زنان هده در بحث حضرت موسان علیه السلام و در بحث حضرت ابراهیم علیه السلام صلی اللہ علیہ وسلم هر دو تا بحث هن کلمه رو اونجا اطلاق میتونه و سخیل در ازدن اطلاق میتونه ازراعان نامن فقال لأهل زماني زماني كان موسى عليه السلام عاش في توريد فقال لأهله جئوا بأهلك ان جئنا لك قد تركت اولادي في قراموي داماد نوي امره بدهنش بودي قال تکزمه فقال لأهله من داخل اهل خودش بدهن خودش چی گفت ان کوسون ان ني عاش نار شما معتادش نميديد ان گفتون مذکرت به زبان خطاب میکنه چرا اون گفتون مذکرت استمال میكره چون کلمه‌ای علم مذاکره وقتی کلمه‌ای علم مذاکره ضمیر یا که براش به کار هم بوده کاربرد داره میشه اگه انکار که موسا کسی خطاب میکنه اصل حمای در کوه تو کسی بوده فقط فقط دانش امر بوده اونجاست که این جمله را حرف برای که قانون ایشون فعجب میکنه بعد سرشتگان خطاب میکنه اونجا هم همی لبز بخار بیرست یعنی ابرکات خداوندی بر شما اهل بیت هست علیه کم میاد و اونجا هم خطاب فقط و فقط به زن حضرت علیه که لبز اینن لبز کم میاد جمیر جمع مذکر هست و خطاب به زوده حضرت ابرائیم علیه طرح حضرت حاضرایان اهل الفتاره دانش شما اونجا خطاب میکرد پس زمین در خود قران موجوده میگوریم از جملهای عربی و قانون زبان عربی و گرامر عربی در خود قران این ضمیر مذکر یا فیل مذکر به جای که لاد اهل به کار رفته به کار رفته بس به خاطر این کلمات یا ضمایر مذکر میشه نه خاطر اینکه اینجا زنان مراد نیستن بلکه احباب دیگه مرادن مثلا معنی نداره این درو ببینید که اینجا فم مذکر شده پس ازواج مراد نیستند بلکه خود ازواج مرادند و این مذکر شدن از روی فم به خاطر کلمه اعلی رضایت شد چون کلمه اعلی رضایت مذکر است اولین کتابش ده, ده همسران رسول الله صلی الله علیه و آله اینه که اینکه اینجا ازواج مرادند همون روایتی که اینا اشتغال میکنن تمام روایت عبا زمانی که رسول الله صلی الله روی این چار نفر انداخت این جمله را بو. اللهما هولاء آل بیت لایت را بیف آذیران و مرد سایر سفیران حالا جو مثال ما اجازه هستن که يا رسول الله من اجازه یادداشت را که من ذره این عبابیا ای مدر این دواش را شریک بسات خودشون که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حال تو خیشانگود که امتی علا خیره یا بعضیها نمیتونه ایلا کنه درسته که علا خد امتی علا تو بهتره زین ولی من خب یعنی از برنامه انتی علا چی؟ و تو شریک اینا نیستی؟ تو نمیخواهد اینجا شریف شدی این که معنی نداری مثل کانعا محبوب روشنه. آیت قبلا نازل شده برای ازواج نازل شده مقال خیلی بلندی برای ترغیب داده شده رسول الله و اصلا برای آلا خودش درش میسوده و اون را جن میکنه دعا میکنه میگه اللهم حالا اعلوبایتی و افرتی فا ا لِتِ اینا رو هم ببر و فخرهم كثيرا اینا رو پاک بگردان پاکی کنه که میبرد پاک بگردان اگر آیه قبلا نازل شده در مورد این اینطور معنی نداره این تحصیل حاصل رسید چیزی که قاتل خداوند گفته من نمیخوام اینا رو پاک بکنم خدا خواسته اون را پاک کنه هر پیغمبر میخواد جواب کنه برایش این معنی نداره که این آیه برای اذرواش شده و همین علت به که آیه برای خودش نازل شده لازم نیست من شما ازواج را آیا فضیلت در, در گیرنده شما را این سفارشش دوستت اما من میخوام اینا که در ازدواج شریک نیستن در این دعا و در این سفارش شریکشون بکنم این مضمون رسول الله صلی الله علیه و آله که انت علی خیره که تو از اینا بهتره که آیه در خودش شما شده درباره شما نازل شده دردی در لازم نیست که من سفارش شما را بکنم و شما به عداه من بیایید من اینا رو شریک می کنم و برای اینا دعا می کنم سفارش می چون آیه درباره اینا نیست می خوام در همون فضیلتی که خداوند برای شما ازواج در نظر گرفته با اینا شما دعا من قبول بده. حالا رسول اللہ صلی خیلی میگه امتیال و شما پرانتی بده شیطان کریک جمله رسول اللہ این پرانتیش شما اجازه میکرید. تعریف که شما بهتر این چون من برای اینه تازه شما آیت شده. بعد از و عالیت هست که اون دیگه غیر ندیگر که از عبا نداشتند، برای آباء آورده شدند. برایی که درهم ساختند، دلشودی داشت که مخواری داشت و نه، در این مقام شریکشون بکنه. یکیش کاری نداره، حد نداره. ما گناه، ما گفته شریکشون، شریکشون. اولاد درهم ساختند، در این مکان شریک باشه مهم نیست ولی از ما ما این تفیت تفیح اصلا کنیم. این دستیاری که فاجعه که برای ازدواج خود بر دعای را شنیده است، اون چهار دفعه امضا داده نده، که این ما بی اما این دلالت بر آسمان میکنه است، چون کلند داره با چون من آسمان بی مده ی آسمان، و دلیل نیاورن داره چهار این دلیل کنن این استدلالی بود از آیه موسیه سوره این کشور اگر چنان که اسم مذهب برده بشود باید مذهب اهل سنت و جماعت رسمی باشه چی باید به فکر اهل سنت باشه خلاف مذهبشون به اینا تحمیل نشه قطبای باشید من با خدای خودم سوگر یاد کردم که جز اون که صلاح اهل سنت و جماعت در آن هست در اینجا نگویم من هیچ دارم این یک دیگه این نداره که حالا من این گروه تحمل کنم مول دیگه بیشتر فینده باشم من از بگیرم فشار خون بگیرم من از, از کند فشار و خون بگیرم ما را از مرد به تهدید ندرسانن که ما افتخاب می با به خدای مسعار قسل از کار و از درگاه او که روج خون من برای بالا کردن دل اصدای و ازلومیت اهل سنت ایران و ازلومیت مسجد شد و ازید ب ولا تقولوا لِمَن يَخْتَلِفُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الله أَمْ بل أحياء وَلَا ولا إِلَّا اللَّهُ كُنْ حَيَاتَكَ خُدَاوَتَ بَرَايَ مَقْتُولِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِالْقَدَرِ حَيَاتِي مِثْلُكُمْ رَاحَةٌ يَا مَن قَتَلَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سبيل الله اللَّهِ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 يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين